از هفته های نخستین سال را با یک شنبه آغاز می کنیم. شاید سال دیگر دلمان خواست که اولین روز هفتمان پنج شنبه باشد نه؟ بله اصل. روز اول هفته را این هفته یک شنبه بدانیم. بی دقدقه، آرام، بدون قلف و بدون توسط به احساسات پوستهای ساده، ساده. پیاده روی کوتاه مدت و شادمانه دم صبح. شادی، شادی خالص. ع رغم هر چیزی که نافی شادی است. باغ ملی. دو شادوش دیگران در تاریک روشن خیالانگیز. دو شاادوش. این کلمه ترکیبی ساده را در دسترس حافظ نگهدار. صدای نفس‌های دوندگان، زمزمه پچ پچه. گفتگویی لحظه ای در باب آنچه امروز خواهیم کرد جای عاشق کجاست در ذره زر ذره حضور عشق به تو به وطن به انسان به اعتقاد به آرامی یاد میگیریم که این چهار عشق را به وحدت برسانیم خلوص گوهر کمیاب عصر ما همان درس‌های کودکانی ساده لوحانه چاره‌ای نیست جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد در استکانهای چای در گلدان در انتظار گل آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست خشونت و دناعت بی اعتقادی آشفتگی ناامیدی دوست داشتن تمام درزهای نتیجه کهنگی و زمان را پر می کند یک پارچگی آرام بخش می دوم آهسته نرم ورزی، ایست ورزی بس است خسته شدم طلوع خرید مختصر صبحگاهی خرید مختصر هفته نان داق روز بربری دیروز هم بربری بود. این یعنی تن به بینظمی مصنوع نس پردن. یک بینظمی حسابگرانه دائمی خود نوعی نظم عادتوار است به اضافه ریا. چای با چند لغمه کوچک نان گرم و پنیر فقط چند لقمه. افراد مزه همه چیز را مخدوش می کند، افراد تعم تهوع دارد. ثروتمندان هرگز مزه سیب زمینی های داغ نیم سوخت زیر خاکستر راه حس نخواهند کرد. اتر گل پر راه هم، در کنار هم راه می رویم، در کنار هم نگاه می کنیم. در آغاز هفته، این در کنار هم بودن، قدم برداشتن، گفتگو کردن، اثبات وابستگی است. اثبات نیاز نباید با تکروی آغاز کنیم بچه ها را با مهربانی بیدار کن اگر دیر برمیخیزند به خشم نیا لذتی دارد از این سو به آن سو قلتیدن و تن به بیداری اجباری نسپردن آرام باش من صبحانه پسرک را می دهم. پسرک را به مدرسه میرسانیم، دخترک را به محت کودک و تو همانجا در مهد کودک میمانی تا آن هفت بچه شیرخاره را نگهداری. گوش کن، باور کن، دیگر معجزه در کار نیست. زندگی را با چیزهای بسیار ساده پرباید کرد. سادهها سطحی نیستند. خرید چند سیب ترش میتواند به عمق فلسفه ملاسد را باشد. مشکل ما این نیست که برای شیرین کردن زندگی معجزه نمی کنیم مشکل ما این است که همانقدر که ویران می کنیم نمی سازیم همانقدر که کهنه نمی کنیم، تازگی نمی بخشیم. همانقدر که دور می شویم، باز نمی گردیم همانقدر که آلوده می کنیم پاک نمی کنیم همانقدر که تعهدات و پیمانهای نخستین خود را فراموش می‌کنیم، آنها را به یاد نمی‌آوریم. همانقدر که از رونق میاندازیم، رونق نمیبخشیم. مشکلی نه است که از همه رؤیاهای خوش آغاز دور می‌شویم و این دور شدن به معنای قبول سلطه بیرحمانه زمان است. بر سر قول و قرارهای نخستین نماندن باور پیر شدگی روح است و خاجگی عاطفه. عشق چاه ویل را هم پر میکند